بسم الله الرحمن الرحيم درس هفتم مرتبة المبتدى والخبر جايقاه يهمون رتبه مبتدا وخبر ما هي مرتبة المبتدى والخبر؟ چه هست رتبه مبتدأ وخبر؟ في كم موضع يجب تقديم الخبر على المبتدى؟ آغا يوساما خيلي سؤالات مهم ميقه در چند جا واجب است که خبر قبل از مبتدا بیاد. معمولا ما شنیدیم که میشه مبتدا چیه؟ میاد ولی میگه بعضی جاها واجبه که اول چی رو بیاری؟ خبر. خبرو. في كم يجب تقديم المبتدا على الخبر. برعکسش. در چند جا واجب است که اول مبتدا بیاد، سپس بیاد خبر. خبر. بیاد. اینا سه تا سوال هستند که دارين درس باسخ من دهات تشلو تشار في المبتدئي التقديم لأنه محكوم عليه وفي الخبر التأخير لأنه المحكوم به واجه دار خدمت بي ميجا أسل كي مقدم باشه ترا كون محكوم عليه ما در مردش حكم دي زيدون آلمون زید عالم است و در خبر اصل برینه کجا بیاد بله در آخر میاد غیر انه قد یعرض ما یوجب او یجیز العدول عن الاصل میگه اما گاهی موقع یه چیزی پیش میاد یه چیزی عارض میشه که یا واجب میکنه یا اجازه میده سرپیچی از این اصلو اصل اینه که اول مبتدا بیاد بعدش خبر ولی میگه گاهی موقع اللحاظ ادبیاتی چیزی پیش میاد که واجب میکنه که ابتدا خبر بیاد بعدش چی؟ مبتدا یا اینکه جایز میکنه که اولش خبر بیاد سفه سی؟ مبتدا چلپنج یجب تقدیم الخبر على مبتدا فی اربعت مواضع واجب از تقدیم خبر بر مبتدا در چند جا؟ اداکان الخبر و ظرفن او و ظرفا بالحرفی مجرورا بالحرف و نکلتن پس ابتدا اون جاهایی رو که تقدیم خبر بر مبتدأ و واجب است در چار رو چکار میکنه؟ بیان میکنه یک زمانی که خبر ظرف باشد یا مجرور به حرف باشد و مبتدا نکره باشد در این حالت اول خبر بیاد سپس بیاد مبتدا باید ماننده اندی غلامون نزد من غلام هست اینجا خبر ما ظرفه اندی نزد من غلامون هم نکره هست پس میبینیم که ابتدام خبر اومده بعدش مبتدا غلامون مبتدای این یک دو اذا کن الخبر اسم استفهام زمانی که خبر چی باشد؟ است، اسم استفهام مانند این الطريق راه کجاست؟ این اسم استفهامه؟ میبینیم که خبر است خبر مقدمه وجوبه الطريق و مبتده ماخره کیف حالک؟ حالت چطور است؟ کیف خبر؟ حالو مبتداه. باله. اذا کان المبتده محصوراً به الله او به انما سو من جایی که مبتده با تأخیر بشه زمانی که مبتده ما محصور باشه یا به الله یا به وسیلی انما در این حالت هم در آخر میاد مبتده ما, ما عادل الا الله نیست عادلی جز الله اینجا ما مبتدارو حصر کردیم یعنی عادل فقط کیه؟ الله خب از اونجایی که حصرش کردیم پس مجبوریم کجا بیاریمش؟ در آخر الله خ... مبتدا مؤخر است تو عادلون خبر مقدم اینجا هم عادلون خبر مقدم الله مبتدار مؤخر چهارمین جا ایده اشتمالا المبتدو الى زمیر یعودو الى الخبری زمانی که مشتمل باشد مبتدا بر زمیری که اون زمیر به خبر بر بگرده خب اینجا ما مشخصه اول خبر رو میاریم بعدش مبتدا رو تا این زمیر به ما قبل بر بگرده تا این زمیر به کجا بر بگرده آخه جایز نیست که هم رتبتن و هم لفظن زمیر به ما بعد بر بگردد فداری صاحبوها در خانه صاحبش هست صاحب مبتدای ماه به صاحب زمیر ها چسبیده که به خبر برمیگرده به دار برمیگرده خوب، پس مجبوریم اینجا مبتدا رو در آخر بیاریم فائده یجب تقدیم الخبری ایزن میگه همچنین واجب است تقدیم خبر آه گفته بود در چهار جا تقدیم خبر واجب است میگه همچنین واجب است تقدیم خبر اذا كان تاخيره مما يخل بفهم المقصود میگه زمانی که اگر ما در آخرش بیاریم به اون مقصد و هدف خلل وارد بشه چی وارد بشه مانند لله در رکع ببینید این یه جملهی که عربه برای تعجب به کارش میبرند. برای چی؟ زمانی از یه چیزی تعجب می‌کنه. تعجب بکنند. خب. در لیلاهی در روکه میگه فلا او لم لن میفهم معنی تعجب. اگر جای اینا عوض بشه یعنی اول مبتدار رو بیاریم که در روکه هست بعدش لیلاهی رو میگه اون معنای تعجب دیگه از این جمله فهمیده نمیشه. یا از یک چیزی تعجب کنه مثلا شیخ خیلی قشنگی متور تگو لیلله در رو او کان اسم اشارتی للمکان یا زمانی که اسم اشاره چی باشه مکان ماننده هنه اخوکا یا سمه اخوکا برادرت اینجاست هنا ببین؟ اسم اشاره مکانه یعنی اینجا یعنی چی اینجا او یا اینکه سما اخوکه آنجا برادر چیه در طول این حالتی می‌بینیم که اول خبر بیاد و سپسی مبتدا پس هنا اخوکه میگیم هنا خبر مقدم اخو مبتدا مؤخر او کان المبتدا مسبوکا من ان ها یا این که ترکیب شده باشه از ان و سلش. در این حالت هم ما اول خبر رو میاریم بعدا مبتدا رو بعدن چی رو؟ مانندی چی ترجمه کرتا؟ ماله. ماننده اندی این انکه اشعر و در نزد من چونین اینست که تو شاعر ترین شعره هستی تو شاعر ترین هستی اندی خبر مقدمه انکه اشعر و ان این با سلش که بعدش اومده میشن مبتدا بیشن چی؟ یعنی اینجا مبتدای ما یک کلمه نیست مبتدای ما یک کلمه نیست انکه اشعر و عن مكان با همه اون موقع میگی چون یک کلمه دیگه نیست 46 يجب تقديم المبتدا على الخبر في اربعه مواضع واجب است تقديم مبتدا بر خبر در 4 اذا المبتدا زمانی که مبتدا واشه مما له از اون کلماتی که جایگاهشون در صدر کلامه اگر مبتدا از اون کلماتی بود که جایگاهشون در صدر کلامه باید اول بیاد وا چه بشه؟ مثل ما تعجبیه مثل ما تعجبیه. ما احسن الصدق صدق چقدر زیباشت صدق چقدر؟ خب ما مبتدا هست ما چی احسن فعل به اضافه اون ضمیر که درش مستطره با هم میشند خبر از صدقه هم که مفعوله این ترکیب جمله تجبیه و کم خبریه کم خبریه هم اگر اگر مبتدا کما خبریه بود بازم باید باز کجا بیاد در ابتدا بیاد مانند کم عبیدن فی بیت ابي برده های زیادی در خانه پدرم هست این داره خبر میده خب اینجا کم مبتدا هست محلن مرفوعه نه دوتا کم داریم ما کم خبریه داریم با کم استفامیه کم خبریه داریم با کم چه؟ استفامیه کم خبریه اینش مجروره بله کم خبریه ممیزش مجروره کم عبیدن اگه سوالی میبود اونجوری میگفت کم عبیدن فی بیت عبید در خونه پدرم چند تا برده هست سوال میکرد کم کتابن اندک چند تا کتاب نزدت هست اون میشه کم استفامیه باله. مال اون منصوبه مال کم استفامیه چیه؟ میخوریم اینا رو جلو اصلا نگران نباش و اسمه و شرط و استفام. اسم های شرط و استفام. اگر مبتدا از اسم های شرط یا استفام بود باز هم در ابتدا بیاد. مانده من یکسل هر کس کسل باشد می کند خب اینجا من من شرطی هست. مبتدا هست. محلا مرفو یکسل هم که فعل مزاره. فعل شرط هست. مجزومه و یکسل هم جواب شرط هست که مجزومه قبلی نرخوندیم. من داری، این هم مال استفهامه، چه کسی در خانه است؟ که من میشه مبتدا محلن، مرفو، او مضافاً الى اسمه الشرط و الاستفهامه. یا زمانی که اون مبتده ما مضافه به اسم شرط یا استفهام باشه. اگر مبتدا مضافه به اسم بود، باز هم باید در ابتده بیاد. باز هم باید کجا بیاد؟ ماننده غلام و من تو کرمهو اکرمهو. غلام هر کسی را که تو اکرام کنی من هم کارش میکنم اکرامش میکنم خب اینجا غلام از که مضافه به شرطه در ابتدا اومده پس غلام میشه مبتدا مرفوب آزمه من مضافه نله من چیه چون من مضافه به منه یا غلامو من فید داری غلام چه کسی در خونه اینجا غلام مضافه به اسم, اسم،, اسم،, اسم استفاده به چیه پس در این موارد زیر واجب است که واجبه کجا کجا او مقرونن یا مبتدا مقرون باشد بما له صداره اون کلمهی که حق رو داره صداره تو داره مانند ماننده للموت فی الله خیر من الحیات همراه با لام ابتدای همراه با چی؟ لام ابتدا موت در رضایت الله بهتر از زندگانیست که اینجا موت از اونجا ایک مقرون لامه لذا در ابتدا باید بیاد او مشبهن به هم و صداره. یا شبیه به چیزی باشد که حق صداات رو داره مان به ال یا دلونی ال مطلوی فلله اون کسی که راهنمایی کند مرا دنبال مطلوبم طلب شدهم گم شدهم آنچه که در تلبش هستن، پس او پاداش دارد که اینجا الازی مبتداست و در ابتدا اومده اذا استول خوب مبتداو والخبر في التعریف والتنکیر دون قرینة تبین المراه مراد بالا این یکی از جاهایی که مبتدا باید در ابتدا بیاد پس جای اول که مبتدا باید در ابتدا اومد یک دو سه چار پنج اون شش جا بودند دومیم جایی که مبتدا باید در ابتدا بیاد از از مبتدا والخبر و الخبر فی التعریف و دون قرینه تبين تبین المراده میگه زمانی که مبتدا و خبر در معرفه و نکره بودن با هم مساوی بودن چون اصل بر که مبتدا معرفه باشه خبر نکره میگه اینا هر دو تا از این جهت معرفه و نکره بودن با هم چی بودن مساوی بودن و قرینه هم اونجا وجود نداشت که به ما بگه این مبتدا و اون چیه؟ خبره اینجا پس میگه ما باید ترتیب راحت کنیم اول مبتدا رو بیاریم رو خبر رو خبرو مثل مون بحث فاعل که خوندیم دیروز قرینه نیست پس ناچاریم که ترتیب راحت کنیم تا اونی که میاد اینو میخونه فردا روز بدون که این مبتدا و اون چیه ماننده اخوک سندی خب اخوک سندی میبینیم اخو و سند هر دوتا این هم مضاف به زمیره اون هم مضاف به چیه به زمیره مضاف به ضمیر که میشه کلمه دیگه میشه چی معرفه میشه هر دو تا شدن معرفه هر دو تا شدن چی برادرت تکیگاه من است خوب. اینجا اونی که مبتداه با چکارش کنیم؟ در ابتداش بیار اخو پس مبتداه اولش آورده چکارش کرده؟ بال خبر رو نمیتونیم اینجا اول بیاریم بعدش چی رو؟ ما رو اکبرو منک سنن ابلغو منک که حنکتن خب میگه اینجا هم اکبرو با ابلغو هر دوتا چی هستند اینجا هم اکبرو مینک سنن ابلغو مینک حون کتن میگه اونی که بزرگتر است از تو از جهت سن پختتر است از تو اللحاظ چی؟ آزمودگی بلیغت... بالغتر است اونی کس میگه سنش از تو بزرگتر است از جهت تجربه هم فراتر است خب هر دو تا نکره هستند پس کدوم مبتدا قرار میدیم؟ اولی رو بعد اول مبتدا رو بیاریم سپس رو پس میگیم اکبرو مبتدا ابلغو هم خبرش میگه اول مبتدار رو آوردیم بعدش خبرو شهرنتون جمله نه نه مهمی نداره ما دهمیش در مورد مبتدا خبر میدیم خبر اینه که میگه اونی که از تو جز جهت سن بالاتره بزرگتر است الله از تجربه پخته است خبرش اینه می‌بینیم که زین عالم است زین چیست خوب میان سنن اون ترکیب میان جار و مجبوره سن هم تمیزه سنن نه هم چیه تمیزه ابلغو خبرشه چون هم مبتدا جز معروفات و هم چی هم خبر هم مبتدا و هم خبر اما اذا وجدت قرینه تبین المراد فیجوز تقنیم الخبری اما زمانی که قرینه باشه و ما بیان بکنه که این مبتده و اون خبر اینجا بیتونیم اینجا جایزه که اول خبر رو بیاریم بسیف رو. مبتده رو ماننده رجل صالح حاضر مرد صالحی حاضر است درسته هر دوتا نکره هستند. ولی ما میدونیم که کدوم یکی محکوم علیه کدوم یکی مصند علیه مرد صالح حاضر است. دو نمیشه گفت حاضر مرد است. آه؟ آه؟ ها؟ او حاضران رجل صالح. هم میتونیم بکنیم. یعنی اول میتونیم مبتدا رو بیاریم معنی در رجل صالح حاضر که رجل میشه مبتدا صالحون خ... صفتش حاضرون خبر. هم میتونیم اول خبر رو بیاریم بعدش چی رو؟ حاضرون رجلون صالح میگیم حاضرون خبر رجلون مبتدا صالحون هم صفتش اینجا جایزه اذا کان الخبرو محصورا به الله و به اینما سوومین جایی که مبتدا مقدمه بر خبر بشه زمانی که خبر محصور به الله یا به انما باشد مل کسلانو الله خاصه اینجا خبر ما حسره هست میگه کسل نیست جز زیان کار خب اینجا ما میخوایم بگیم که فقط زیانکار چیه؟ زیان... کسله فقط زیانکار چی هستن؟ خب اینجا مبتدا که کسلانه قبل از چشم میاریم قبل از خبر الکسلانو خاصرون انسان کسلان چیه؟ ولی از اون جایی که ما نصر کردیم خبرو یعنی فقط زیان، زیانکار کیه؟ کسلانه خبرو بعد اینجا چکار کنیم؟ در آخر بیاریم و اول چی رو بیاریم؟ باید مبتدار رو پس زیانکار فقط چی فقط خ... نه اینجوری ترجمش کنیم درست میاد ز... انسان کسلان فقط چی زیان کاره یعنی میشه چیه زیان. فقط زیان کاره انمل جاهل من لا یعتبر جاهل کسیه که عبرت نمیگیرد. من لا یعتبر عبرت نمیگیرد. بله فقط فقط جاهل است که عبرت یعنی جاهل جاهل نمیگیرد. اذا کان الخبر جمله طلبیتا زمانی که جمله همچی باشه چارمین جا که باید اول خبر بیاد سپس اول مبتدا بیاد سپس خبر اذا کان الخبر زمانی که باشد خبر جمله طلبیتا جمله طلبی پس چارمین جایی که چارمین جایی که مبتدا قبل از خبر باید بیاد اذا کان الخبر زمانی که باشد خبر جمله طلبيه جمله طلب. طلبی انشایی نباشه چه باشه؟ طلبي باشه مانند اد درهم و انفقه درهم و خرج کن خرج کن امره امر جز طلبه امر جز چیه؟ اد درهم و انفقه اینجا خبر ما از اون جایی که طلبه چیه؟ پس باید در آخر بیا نمیتونیم اولش بیاریم. از در هم میشه مبتده انفقوها خبرش. که خب محلل میشه مرفه. چون جمله از خبر ما اینجا دیگه. فعل که داره. فعل که چه داره؟ فعل با فائلش میشه خبر. یا مانند اخو که لا تؤذیح. برادرت ازیتش نکن. اینجا هم برادرت ازیتش نکن. خبر ما جمله چی هست؟ طلبه. تو ازیت نکن. نهی. چی بحل. دیگه چه زمان؟ او فعلا رافعا لزمیر المبتدا. بی ببین یا زمانی که خبر فعل باشد خبر باشد؟ فعل باشد و زمیر مبتدا رو مرفوع بکنه و زمیر مبتده رو چه کار بکنه؟ مانند الحاکم و انصفه فی حکمه حاکم قاضی انصاف کرد در حکمش ادالت کرد. اینجا در انصفه زمینی هست که هو هست و مال مبتداه به حاکم بربیگرده برمیگرده؟ بر میگرده؟ در این حالت هم اول مبتدا رو بیاری سپس خبر رو پس حاکم میشه مبتدا فائده، و ماخل امامااک المدکوره المذکوره، یارو بین تقدیم خبر و تأخیرش کلا مستقام معنا و حصلت فائده ی فایده بسیار جالبی رو که ذکر میکنه میگه در بغیر از موا... این جاهایی که ذکر شدند ببین اسام جان ما خوند جاهایی رو که واجب بود خبر مقدم بشه و خوندیمون جاهایی رو که واجب بود مبتدا مقدم بشه بغیر از اون جاها تا جای کار خوندیم میگه بغیر از این جاها بقیه جاها جایزه اول مبتدا رو بیاری یا خبره بياري جائزة وليم بيجي أجر معنى درس درامات كلما استقام المعنى أجر معنى درس درامات وحصلت فائدة وقل فائدة هم تشود بالك